اصل هفتم، هیچ معلوم بود که چطور ظرف سما کار بیماری ایوان ایریچ به اینجا کشید تغییر حال او به تدریج به آهسته آهسته صورت می گرف. اما آقبت طوری شد که زن و دختر و پسرش و خدمتکاران و آشنایان و پزشکان و از همه مهمتر خود او می‌دانستند که تنها احساسی که در دل دیگران بیدار می این است که رفتنی است و عاقبت کی میخواهد جارا خالی کند و زندگان را از زحمت وجود خود آسوده سازد و به عذاب خود پایان دهد خوابش پیوسته کمتر میشد به او تریاک میدادند و آمپول مرفین میزدند اما اینها رنجش را تسکین نمیداد افسردگی گنگی که با مدهوشی حاصل از تریاک و مرفین همراه بود ابتدا چون تازگی داشت اندکی بار خاطرش را سبوش میکرد اما این حالت به زودی به همان رنجاورگی درد تسکین نیافته یا از آن شد. بنابرای سفارش پزشکان برایش غذای مخصوص میپختند اما این غذاهای مخصوص به دهانش پیوسته وسطه بیمزه تر می را بیشتر و بیشتر به هم برای اجابت مزاجش نیز ترتیب خاصی داده بودند. اما این کار نیز هر بار با عذاب تا هم بود. از آب از ناپاکی تن و زشتی کار و بوی بد بود و نیز از اینکه میدید می دید که این کار همیشه می در حضور و با شرکت شخص دیگری صورت گیرد اما در همین کار بسیار نامتبو برای ایوان الیچ تسلایی پدید آمده بود همیشه پیش خدمتش همان گراسیم رستایی می آمد و لگنش را بیرون میبرد. بی گراسیم جوان پاکیزه و با نشاطی بود که با غذاهای شهری چاق شده بود شاد بود و برق زندگی در چشمانش می‌درخشید ابتدادی دیدار این جوان همیشه پاکیزه و لباس روسی پوشیده که ناگزیر این کار نفرت آور ناپاک را انجام می‌داد اسباب خجالت ایوانیدیش بود یک بار وقتی از روی لگنش برخواسته بود و نیروی بالا کشیدن شلوارش را نداشت در صندلی دستدار نرمش فرو افتاد، از دیدن رانهای اوریان خود، پوستی نازک بر عضلاتی خوشیده، وحشت کرد گناسین با چکمه های یغورش که بوی تند و تازگی بخش قطران از چرمشان میتراوید با قدمهایی های و نیرومند وارد شد و تازگی هوای زمستان را با خود آورد پیرهن چیت پاکیزهای تن داشت که آسین های آن را بر بازوهای جوان و زورمند خود بالا زده بود و پیشبندی کنفی روی آن بسته بود بیان که به بی ایوان ایدیش نگاه کند و از ترس اینکه مبادا او را بیازارد آشکارا، خرمی و نشاط زندگی را که در چهرهش می درخشید پنهانکنان به سمت لگن رفت ایوان ایدیش با صدایی که انگاری از ته چاه برمی گفت گراسیم گراسیم یک چه خورد و پیدا بود از ترس آنکه مبادا کار بدی کرده باشد ناگهان صورت شاد و جوان و مهربان و سادهاش را که کرک ریشی تازه داشت سیاهش میکرد به جانب ارباب خود گرداند و گفت بله چه فرمایشی داری ارباب ایوانیلیش گفت این کار باید برای تو خیلی نامطبوع باشد مرا ببخش چارهای ندارم چشمان گراسیم برقی زد و نیشش باز شد و دندانهای جوان و سفیدش را نمایان کرد و گفت چه حرفا میزنیدر با؟ چرا خودتان را ناراحت میکنید؟ شما مریزید، عذرتان خواسته است. این را گفت و کاری را که میبایست بکند با دستهای نیرومند و چالاک خود صورت داد و با سبوش پایی رفت پنج دقیقه بعد همان گونه سبوش رفتار بازگشت ایوان ایلیچ همچنان در صندلی نشسته بود وقتی گراسیم لگن شسته و پاکیزه را به جای خود گذاشت ایوان ایلیچ گفت گراسیم لطفاً بیا کمکم کن بیا جلو گراسیم جلو رفت بیا بلندم کن تنهایی زورم نمی‌رسد. دمیتری را فرستادم برود گراسیم پیش رفت و بازوی نیرومندش را که در چالاکی به قدم هایش میمانست زیر بقل او کرد و به نرمی بلندش کرد و نگاهش داشت مبادست دیگرش شلوارش را بالا کشید و خواست دوباره او را در صندلی بنشاند اما ایوانیش از او خواهش کرد که کمکش کند تا روی کناپه برود گراسیم بی هیچ زحمتی بیشتر وزن او را تحمل کنان او را به کناپه رساند و روی آن نشاند متشکرم. تو همه کار را چه فرزو خوب میکنی گراسیم دوباره لبخندی زد و میخواست برود اما ایوانیدیش از نزدیکی او به قدری احساس راحتی میکرد که نمیخواست مرخصش کند ایوانیدیش گفت میدانی چه لطفا آن صندلی را جلو بیاور نه آن یکی را زیر پاهای من بسران وقتی پاهایم بالاست راحت ترم گراسیم صندلی را برداشت و به یک حرکت و بی و بی آن که را به جایی بزند به نرمی روی زمین نهاد و پاهای ایوان الیچ را بلند کرد و روی آن گذاشت ایوان ایلیچ وقتی گراسیم پاهای او را بلند کرده بود احساس راحتی می کرد وقتی پایم بالا باشد خیلی راحت ترم بالش را هم بگذار زیر پایم گراسیم تا کرد گرد و پاهایش را بالا آورد و بالش را زیر آنها گذاشت. وقتی گراسیم پاهای او را در دست داشت، ایوان ایلیچ را دید که احساس راحتی میکند. و وقتی آنها را روی بالش گذاشت، ناراحت شد. گفت، گراسیم، الان کاری داری. گراسیم که با معاشرت با شهر نشیدان شیوه حرف زدن با اربابها را یاد گرفته بود گفت، ابدان قربان چه کاری؟ دیگر چه کاری داری که بکنی؟ دیگر چه کار دارم بکنم؟ هیچ همه کارهایم را کردم فقط باید برای فردا هیزون بشنم پس یک خورده پاهایم را بالاتر نگه دار میتوانی؟ چرا نتوانم؟ پاهای او را بالاتر برد و ایوان ایریچ را دید که در این حالت اصلا دردی احساس نمی کند خب هیزوم را کی میشکنی. شما فکر هیزوم را نکنید. هیزوم را هم میشکنم. ایواندیش به گراسیم دستور داد که بنشیند و پاهای او را نگه دارد و شروع کرد با او حرف زدند و عجیب این بود که به راستی احساس می کرد وقتی پاهایش در دست گراسیم است حالش بهتر است. از آن روز به بعد ایواندیش گاهی گراسیم را صدا می کرد تا پاهای او را روی شانه خود بگذارد و در این حال دوست داشت با او حرف بزند. گراسیم به آسانی و با میل و سادگی و مهربانی این کارا میکرد و این شیوه رفتار او بر دل ایوان ایریش اثر می گذاشت. تندرستی و نیرومندی و نشاط زندگی دیگران ایوان ایریش را می آزود. فقط بود که این کیفیاتش دل او را تنگ نمیکرد و به عبس باعث آسودگی اش بود حیوان بیش از همه چیز از دروغی رنج می برد که معلوم نبود چرا همه می گفتند و آگاهانه می گفتند و اصرار داشتند که او را بیماری عادی بدانند و نه معتزری در آستانه مرگ می گفتند که باید آرام بماند و به مداوا ادامه داد و اگر به دستورهای پزشک عمل کند نتیجه خوب خواهد گرفت اما او به خوبی میدانست که هر كاریهم بکنند هیچ نتیجه جز عذابهای بیشتر و عاقبت مرگ نخواهد داشت این دروغوی او را عذاب میداد عذاب از اینکه هیچکس نمیخواست آنچنان که همه از جمله خود او میدانستند آشکارا را بگوید و ترجیح میدادند درباره وضع وخیم او دروغ بگویند و خود او را هم در این دروغ خود شریک سازند این دروغ این تیریگی مجازینی که بر پایان زندگیش سایه دروغی که این مرحله هورناک و شکوه زندگی او را که مرگ بود تا حد دید و بازدید ها و بحث بر سر چنین و چنان پرده و خوشمزگی اوزون برون نهار پایین می آورد، او را سخت از میداد. عجیب آن بود که بارها وقتی که آنها این شوخی خود را با او ادامه می چیزی نمانده بود فریاد بزند. بس کنید دروغ نگویید. خوب میدانید و من هم خوب میدانم که دارم میمیرم. دست کم این دری را کنار بگذارید. اما هرگز جورت نکرده بود این کار را بکرد. امیدید که اطرافیانش همه مرگ هولنگیز و تلخه او را تا حد واقعی مبتزل به ناخوشایند و تا اندازی حتی رکیک پایین می آورند. مثل رفتارشان با کسی که به مجلسی وارد شود و هوای مجلس را با بوی گ و این کار را به نام همان شایستگی و آدابدانی می کنند که او تمام زندگی خود را بر سر آن گذاشته بود میدید که هیچ کس او را نمی خورد. زیرا هیچ کس نمی خواهد حتی حال او را در کند فقط گراسین بود که حال او را می فهمید و دلش برایش می سخت. و همین دلیل افاریلیش فقط در کنار او راحت بود و از صحبت با او لذت می برد لذت می برد از اینکه گراسین گاهی تمام شب بیدار می‌نشست و پاهای او را بر شانه‌های خود نگه می‌داشت و راضی نمی‌شد که بخوابد و می‌گفت شما ناراحت نباشید ایوانیلیچ من فرصت خوابیدن پیدا می‌کنم و بعد گاهی به عادت روس‌ها یا ناگهان شروع می‌کرد به او تو خطاب کردن و می‌گفت اگر مریض نبودی باز چیزی اما حالا که مریضی باید خدمت از را کرد فقط او بود که دروغ نمی گفت همه چیز حاکی از آن بود که فقط او حقیقت را می فهمید و جایز نمی دید که آن را پنهان کند و به سادگی بر ارباب نحیف و نظار خود دل میسوخت. حتی یک بار وقت ای او را مرخص می کرد گفت عاقبت همه یک روز می میریم این یک خرد زحمت به جایی بر نمی خورد او با این حرف می خواست بگوید که مختصر زحمتی که برای او میکشد برای شاق نیست زیرا این زحمت را برای معتزری متحمل میشود و امیدوار است که روزی کسی بار همین زحمت را برای او بپذیرد گذشته از این دروغ یا به علت آن تلخ در این رنج ایوان ایلیچ آن بود که هیچی از آن جور که او میخواست قب او را نمیخورد او گاهی بعد از رنجی و بیش از همه چیز دلش میخواست که گرچه از اقرار به این معنا شر داشت کسی برایش مثل طفل بیماری قمخاری کند دلش میخواست مثل تفلی که ناز و نوازشش میکنند رویش را ببوسند یا برایش عشق بریزند و دلداریش بدند او میدانست که شخص مهمی است و ریشش سفیدی است و به همین علت چون این آرزویی بیجاست با این همه این خواهش دلش بود رابطش با گراسیم نیز چیزی شبیه به همین قمخاری والدین برای کودک وجود داشت و به همین علت قمخاری گراسیم با اسه خوشیش بود ایوان الیچ میخواست گریه کند میخواست نوازشش کنند و برایش عشق بریزند اما به جای اینها همکارش شبک به دیدنش آمد و ایوان الیچ به عوض اینکه گریه کند و نوازش بخواهد حالتی جدی و سخت و حاکی از ژرف اندیشی به خود گرفت و بنا به عادت قدیم شروع کرد باره حکم دادگاه استیناف اظهار نظر و بر عقیده خود پافشاری کردن این حال مجازینی که در اطرافش و در خودش حاکم بود آخرین روزهای زندگیش را می میشند